حکایت سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر، جوانی به بدرقه همراه ما شد، سپرباز، چرخانداز سره بیش زور که به ده مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روگ زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولاکن چنون که دانی متنعم بود و سایه پرورده نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. نیفتاده بر دست دشمن اسیر به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هران دیوار قدیمش که پیش آمد به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی پیرکو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیرکو تا کف و سرپنجه مردان بیند. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر وردند و آهنگ قتال ما کردند. به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه پایی، بیاران چه داریز مردی و زور که دشمن به پای خود آمد بگو. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخان. نهر موی شکافت به تیر جوچن خای به روز حمله جنگاوران بدارت به پای. چاره جزا ندیدم که رخت و سلاح و جامهاره ها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم، به کارهای گران، مرد کار دیده فرست که شیر شرزه در آرد به زیر خم کمند. جوان اگرچه قریال و پیلتن باشد به جنگ دشمنش از حول بکسلت پیوند. نبرد پیش مسافازموده موده معلوم است چنانکه که مسئله شر پیش دانشمند.